این داستان گونان باتار به نام خدا و باسلام سلام در زمانهای قدیم چوپان فقیری با همسرش زندگی میکرد اون گوسنده زیادی نداشت با این حال روزها از گله مواظبت میکرد و ازها کلوچههاییری که زنیش میپخت به مردم میفروخت. چند سال به این ترتیب گذشت تا اینکه همسر چوپان پسری به دنیا آورد که خیلی عجیب بود. هنگامی که یک روز از عمر اون گذشت متوجه شدن که برای پوشاندن اون یه پوستین کمه. به هنگامی که دو روزه بود حتی دو تا پوستین هم برای اون کافی نبود و پنج روزه که شد پنج پوستین هم برای اون کافی نبود اونها اسم این کودک رو گونان باتار گذاشتند وقتی گونان به سن جوانی رسید پدرش برای اون یک کرعص اسب کهر یک زین یک افسار و یک تیرو کمان خرید گونان شکارچی خوب و ماهری بود هر وقت که با دست پر از شکار باز میگشت پدر میخندید و به اون افتخار میکرد او با خود پوست روباه می آورد و خرگوش های زیادی از زین اسبش آویزون بود چیزی نگذشت که مهارت و قدرت اون بر سر زبان افتاد روزی حاکم از محل اونها میگذشت که به طور اتفاقی گفتگوی مردم رو درباره گونان شنیدند گونان عجب سوارکاریه در تقدیرش اومده که حاکم بشه یک حاکم اصیل و واقعی نه مثل این حاکم فعلی که مثل یک اسب گنده که بجز خوردن و خوابیدن کاری ولد نیست حاکم از شنیدن این حرفها خیلی خشمگین شد و تصمیم گرفت گونان باتار رو از بین ببره او دستور داد پسر چوپان رو به حضورش بیارند هنگامی که گونان به حضور حاکم رسید حاکم بر دوشک نرمش لمیده بود و پرخوری میکرد حاکم گفت شنیدم در سرزمین من شجاهتر از تو کسی پیدا نمیشه همچنین شنیدم که هیچ اسبی سریتر از کرر عصب تو در جهان وجود نداره. اما شنیدن کیبه ماننده دیدن. میخوام که شجاعت خودت رو به من ثابت کنی. گونان گفت من حاضرم. حاکم گفت پس به جنوب برو به جایی که حیولای ده سر زندگی میکنه. اون رو اسیر کن و به چادر من بیار. گونان را افتاد و گفت بسیار خوب همین الان حرکت میکنم. شما هم تا برگشتن من گودالی برای دفن این حیولای آدمخور آماده کنید اون کمندی رو که طولش 180 متر بود برداشت بر اسبش سوار شد و به سوی جنوب تاخت برای همه این مسیر یک سال طول میکشید، اما گونان این راه رو یک ماه طی کرد اون طوری در دشت میرفت که گویی بال در آورده و پرواز میکنه ناگهان کره اسب سرعت خودش رو کم کرد و وسط جاده ایستاد و شیحهٔ بلندی کشید و چند قدم به عقب رفت اونم پرسید چرا ایستادی چرا از میون دشت ها پرواز نمیکنی کره اسب پاسخ داد آیا در جایی که آسمون و زمین یکی شده اون لکه سیاه رو می‌بینی؟ گونان جواب داد بله میبینم اونجا یه کوه بزرگه اسب سر کوچک خود را تکون داده گفت نه اشتباه میکنی اون کوه نیست اون لکهسیا هیولای آدمخوره که روی اسبش نشسته گونان فریاد زد و به طرفش گیز برداشت به کمانش رو به سرعت از پشت هاش برداشت کره اسب که هر گفت نه اشتباه نکن تا وقتی که حیولا بر اسب نشسته، هیچکس کس نمیتونه اون رو شکست بده. باید کاری کنی که از اسبش پایین بیاد. گونان گفت: چطوری؟ کار اسب فکری کرد و گفت: کمند خودت رو بردار و از اون درختی که اونجاست بالا برو. بعد گونان رو که اسب گفته بود انجام داد. از درختی که در کنار جاده بود بالا رفت و کمند رو به دست گرفت و منتظر موند تا ببینه چی پیش میاد. هیولا که از دور دیده بود اسبی به سوی اون در حرکت تازیانی و اسب خودش زد و مسیر که باید سر روزه طی کرد در عرض یک دقیقه طی کرد. کرر اسب اون رو به دنبال خود میکشید و به طرف درختی رفت که صاحبش بالای اون پنهون شده بود. بی حرکت ایستاد و رو از گوشه چشم حیولا را نگاه میکرد. حیولا از اسب خودش پیاده شد و به سوی کرر اسب قدم برداشت. تازیانش رو بلند کرد که به گردن کره اسب بزنه در همین موقع گونان مثل برق کمند رو به روی حیولا انداخت و به روی اسبش پرید و اون رو به دنبال خودش کشید. دیدن گونان باتار سوار مر اسب در حالی که هیورالو به دنبال خودش میکشید کشید جالبی بود اونها میرفتند و خط سیاهی از خاک و قبار دنبالشون کشیده شد در این هنگام بود که صدای قرشی در چادر و حاکم به گوش رسید از صدای اعضب که روی دو پا بلند شده بودند و شیهه میکشیدند. گاوها ها به صدا در آمدند و گوزفند ها مظلومانه بعدم کردند کوه و دشت به لرزه در بود. بود از این هم همه و سرزده ترسیده بود و هیکل چاقش می لرزید. وزیر سال گفت سردن من, من آیا می چرا در سرزمین شما چنین سر و پا شده؟ حاکم جواب داد خب معلوم زلزله اومده که اینطوری کوها به لرزش در میاد. وزیرش سری داد و گفت خیر قربان این هیولاست که به چادر شما نزدیک میشه. هنوز حرف وزیر تموم نشده بود که حیولا جلوی چادر حاکم به زمین پرد شد. حیولا سرای خودش رو به زمین میگلتوند و فش فش میکرد. خیلی دلش میخواست حاکم رو درسته قورت بده اما نمیتونست خودش رو از بند آزاد کنه. چون دستای آهنین گونان تار، اون رو محکم در کمند نگه داشته بود. حاکم فریاد زد گونان اون رو از جلوی چشمای من دور کن. گونان حیولا رو به چاهی انداخت که عمق اون 54 و چهار متر بود همه یک نفس راحت کشیدند حاکم از گونان خوشش اومده بود و گفت هیچ حاکمی نیست که نزد خود مردی به شجاعت تو داشته باشه. در چادر من بمون و به من خدمت کن من هم در عوض به تو یک گله گوسفند و گاو و شتر میدم اصلا یه چیز دیگه اگه نزد من بمونی دخترم رو به همسری تو در میارم گونان به چشمای حاکم نگاه کرد و گفت چادر حاکم خوبه اما چادر و پدر و مادر هر کسی بهترینه پول و ثروت و مال و منال لذت بخشه ولی آزادی لذت بخشتره خدا نگهدار گونان این جمله ها رو به زبون آورد و برکرده است به خودش سوار شد و به سوی چادر پدر مادرش حرکت کرد. پنج روز از اقامت گونان در چادر پدر مادرش گذشت. روز ششم بود که وزیر حاکم به دنبال اون و گفت حاکم ها تو رو ببینه. عجله کن و به دنبال ما بیاد. گونان سوار بر اسب کهر خودش شد و به حضور حاکم رسید. حاکم گفت در سرزمین من مردی از تو وجود نداره. و در سراسر دنیا اسب سریتر از کره اسب تو پیدا نمیشه. این بار برای تو معمورتی دشوارتر دارم. اگر دختر حاکم قدرتمند سرزمین اییفسن رو به نزد من بیاری تو رو جانشین خودم خواهم کرد. و اگر از عهده این کار بر نیای تو رو در مقابل سک میندازم میندزن. که ذره ای سر وجودش نبود قبول کرد. سباره بر اسب خودش شد و سراغ پدر مادرش رفت تا قبل از رفتن به چنین معمولیت خطرناکی از اونها خداحوزی کنه چوپان پیر هنگامی که ماجرار شنید آهی کشید و گفت تو نمیتونی به سرزمین حاکم ایرپسند بری چون برای رسیدن به اونجا ابتدا باید از رودخانه مرگ بر کنی که تا کنون هیچ انسان و یا هیچ اسبی نتونست از این رودخونه عبور کنه. آب این رودخونه طوریه که اگر یک قطره اون روی تو بریزه فوراً خواهی مرد. بعد از رودخانه مرگ دریای سرخ واقعه شده. اگر یک قطره از دریای سرخ بر تو پاشیده بشه، آتش میگیری و زنده زنده خواهی سوخت. گونان از پدرش تشکر کرد و سوار بر اسب را افتاد. او که بسیار شجاع و نترس بود، تصمیم داشت هر طور شده به این سفر پرخطر بره او رفت و رفت دا به رودخانه ای مرگ رسید برای اطمینان از حرف پدر یک تکه نی چید و در آب فرو کرد همون لحظه شاخه نی زرد و پجمرده شد کار را از گفت پدرت درست میگفت شنا کردن در این رودخونه محاله گونان گفت هر طوری شده من باید از این رودخونه بگذرم از گفت نگران نباشه، من برادر بزرگ خودم رو خبر میکنم تا به ما کمک کنه. گونان گفت برادر بزرگ تو کیه؟ از وقتی تو رو شناختم تنها بودی؟ از گفت این یک رازه گونان، ولی من اون رو به تو خواهم گفت. باد صحرا برادر بزرگ منه. در حالی که دهان گونان از تعجب باز مونده بود، کرعصب سرش رو به سمت مشرق سرخوند و شیههی کشید زمانی نگذشت که باد شهرها با عجله به سوی روتونی مرگ اومد و در یک چشم هم زدن اسب و سوارش رو به هوا بلند کرد و اون سوی روتونه به زمین گذاشت. اونها باز برای خودشون ادامه دادند هنگامی که به ساحل دریای سرخ رسیدند از حرکت باز موندند آب دریا که به رنگ خون بود میخورشید و از اون بخار برمیخواست اونان تکه چوبی پیدا کرد و در آب دریا انداخت چوب شولهور شد و در یک لحظه به خاکستر تبدیل شد کره اسب به صاحبش نگاه کرد و گفت پدرت درست میگفت تو نمیتونی در دریای سرخ شنا کنی و از اون بگذری اونان دوباره غمگین شد و به ها نگاه کرد کرهاسب این بار همسرش رو به سوی مشرق چرخوند و با صدایی بلندتن از دفعه قبل شیحهی کشید. خبری از برادرش باد نبود. یک ساعت گذشت اما باز هم باد سحران نیومد. یک ساعت دیگه هم گذشت ولی از کمک خبری نشد. گنان دل بود. بعد از گذشت دو ساعت گنان از دوردست های آسمون، عبر سیاهی رو دید که به طرف اونها در حال حرکت بود. عبر سیاه لحظه به لحظه بزرگتر و بزرگتر می شد. کرعصب یال هاش رو تکون داد و گفت حتما برادرم این عبر سیاه رو برای کمک ما فرستاده. عبر سیاه آهسته و آروم پایین اومد و در ساحل به زمین نشست. ابر شبیه یک قایق بود. گونان و کرعصب سوار اون شدند و در همین لحظه باد شدیدی وزید و ابر رو در آسمون بالا برد و اونها رو از دریای سرخ عبور داد. اون شیه دریا ابر اونها رو به زمین گذاشت و دوباره به آسمون برگشت. اگر چه شب شده بود اما گونان باتار به سفرش ادامه داد. هنگام طلو آفتاب اون به سرزمین حاکم ایرپسین رسید دشتی وسیع با چادرهای پراکنده در گوشه یه جمعیت زیادی جمع شده بودند گویا جشنی برپا بود گونا جلو رفت و از مردی پرسید اینجا چه خبره برادر؟ مرد گفت چطور خبر نداری؟ امروز جشت بزرگی در اینجا برپا شده دو برادر به نام های شامدگای و یورد در بازی امروز با یکدیگه رقابت میکنن گونان گفت عجب جایزه این رقابت چیه؟ مرد گفت طبق گفته حاکم هرکس کس این مسابقه بشه دختر حاکم به عقل اون در میاد جشن باشکوهیه اگر میخوای تماشا کنی همینجا کنار من بیست گونان چیزی نگفت و به طرف چادر بزرگ که متعلق به حاکم بود رافتد را ازپش رو بست و به داخل چادر رفت حاکم نگاهی غضبآلود به اون کرد و گفت چیکار داری گونان پاسخ داد میخوام در بازیهای امروز با مردان شما رقابت کنم حاکم که حیرت زده بود با شرکت اون در مسابقه موافقت کرد ظهر هنگامی که خورشید در وسط آسمون قرار گرفت اولین مسابقه که تیراندازی به هدف مشخص بود شروع شد برای این کار اونها یک سوزن آهنی در یک کنده درخت بلوطی فرود کردن و به نقطه ای رفتن که اش تا اون کنده درخت یک ماه طول می کشید. شامدگای اولین نفری بود که برای تیراندازی نشونه گرفت. او در طی دو روز زه کمان رو کشید و در سهرگاه روز سوم تیر رو به سوی هدف پرتاب کرد. اما تیر این دلاور به هدف نخورد و در کنار کنده درخت به زمین افتاد شام خشک شد و کمون خودش رو شکست حالا نوبت یورت بود که نشونه بگیره و اون چهار روز تموم زه کمان رو کشید و در سهرگاه روز پنجم تیر رو به سوی هدف رها کرد این بار تیر از بالای هدف رد شد و اون سوی کنده درخت به زمین افتاد. یورت عصبانی شد و اون هم کمان خودش رو شکست. گونان باتار با تیر و کمان پدرش جلو آمد و تیر رو در کمان گذاشت و سه روز تمام زهر رو کشید. سهرگاه روز چهارم رو تیر رو به سوی هدف رها کرد. تیرگونان مانند نخ سفیدی درست در وسط سوراخ سوزان نشست و او در اولین مسابقه برنده شد مسابقهٔ کشتی شروع شد چامداگای و یورت سه روز با هم کشتی گرفتند و بالاخره چامداگای یورت را شکست داد در محلی که او یورت را به زمین زده بود گودالی به عمق 9 متر به وجود اومده بود چامداگای در بالای گودال چند قدم بالا و پایین رفت و اومد و با خودصدایی گفت هیچکس از من قوی تر نیست. حاکم دخترش رو به همسری من در میاره. گونان به کنارش رفت و گفت زیاد به خودت مغرور نشو. بیا زورت رو با من آزمایش کن. اون دو با هم کشتی گرفتن. پنج روز تمام اونها تلاش کردند و یک دیگر رو به زمین بزنند. مردم از این نبرد طولانی خسته شده بودند سر انجام گونان پایش رو به زمین کوبید و زیر پاش گودال عمیقی حرف شد و شامدگای در گودال افتاد و شکست کرد دوستانش با زحمت و سختی بسیار موهاش رو گرفتند و اون را از گودال بیرون آوردند. و حالا نوبت آخرین مسابقه بود. سه قهرمان سوار و اعصبهای خود آماده سوارکاری بودند. اسب شامدگای قهوه‌ای بود و یا به رنگ سیاهی داشت او اسبی آتشین بود که از چشماش جرقه بیرون میریخت و و یورت هم اسبی وحشی به رنگ سرخ آتشی داشت که وقتی نفس میکشید از سوراغهای بینیش شوله بیرون میمد در کنار این دو اسب گونان بر کره اسب کهر و آرام خودش سوار بود مردم به او و کرعصفش می خندیدن چنین اصبی فقط برای دنبال کردن گوسفندا به کار می اومد. در جایگاه مخصوص حاکم برای تماشای مسابقه عصف اومده بود و اون دخترش تیست رو که بسیار زیبا بود به همراه آورده بود هنگامی که گونان دختر حاکم رو دید نه یک دل بلکه صد دل آشق اون شد فیسرسک هم به محض دیدن اون پسر چوپان دل باخته اون شد و در گوش پدر گفت میخوام همسر جوانی بشم که بر اسب کهر سواره. حاکم خشمین شد و بر سر دخترش فریاد کشید و گفت تو حق نداری همسرت رو انتخاب کنی. از این سه نفر هر کسی زودتر به تپه برسه همسر تو خواهد شد. مسابقه شروع شد. اسبها به سوگ بالای تپه تاختند و از هم سبقت گرفتند اسب قهوهای که یال و دم سیاهی داشت از همه جلوتر بود و پشت سر اون اسب سرخ و آخرین درنده اسب کهر بود هنگامی که دختر حاکم متوجه شد گونانواتار از رقیباش عقبه گریه سوزناکی سر داد و ناامید به سوگ چادرش دوید گونان به جلو خم شد و همونطور که میتاخت در گوش اسب که هرش زمزمه کرد. هرز و اسب از تو جلوتر هستن. اگه اینطوری پیش بریم تیست سگ زیبا همسر من نخواهد شد و من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. اسب که هر در جواب گفت قصد نخور گونان. امیدوار باش. سپس روبه مشرق کرد و شیهی کشید چیزی نگذش که گرد بادید. زوزه کشان در به راه افتاد گردبا دور خود چرکید و در برابر اسبهای قهوهای و سرخ ایستاد اسبا دیگه توان حرکت نداشتن. شامداگای و یورت با خشم به اسبهاشون تازیانه می‌زدند. ولی اونها آروم بر جای خودشون ایستاده بودند و حرکت نمی‌کردند. در این هنگام کره اسب گونان از اونا جلو زد و خودش رو به بالای تپه رسوند تماشاچیان گونان با رو تشویق کردند و هلهله سر دادند. دختر حاکم با شنیدن سر و و هیاهوی مردم از چادرش بیرون اومد تا ببینه که باید به همسری چه کسی در بیاد. دختر حاکم وقتی که دید گونان با لبهایی پر از خنده به نزد پدرش میره اون دو رقیب عقب موندند خوشحال شد و از خوشحالی صورتش گل انداخت. حاکم با چهره تلخ و عبوز به گونان گفت تو سواری از سرزمین های بیگانه هستی و من ایلو تبار تو رو نمیشناسم با این حال بر سر قول خودم هستم و دخترم رو به همسری تو درمیارم هم گونان سرش رو پایین انداخت و از خجالت سرخ شد حاکم ادامه داد فقط باید چیزی به تو بگم برای جهیزیه دخترم نمیتونم به تو تلاو و نقره و لباس و اسب و شطر و گوسمد و گاب و مرتبه به غیر از اینها هرچی چی بخوای قبول دارم. حاکم ته دل خوشحال بود و مطمئن از اینکه اونان بدون گرفتن جهیزیه و دخترش ازدواج نمیکنه. اما اونان همسرشو اسبی که هرش نشوندو به حاکم گفت من به تلاو و نقره و لباس یا مرتب احتیاجی ندارم. شما در عوض به جای اسب به من کره اسب به جای گاب، به من گوساله و به جای شطر و گوسمند به من بچه شطر رو بره بدید. حاکم از این پاسخ زیرکان خوشش اومد و فرمان داد که به درخواست اون عمل بشه. زن و شوهر جوان از حاکم خدافیزی کردند و راه افتادند. در حالی که گله از کره اسب و گوساله و بچه شطر و بره پیشا پیش, پیش اونها در حرکت بود، هنوز راه زیادی نرفته بودند که از پشت سر صدای مهیبی رو شنیدند هنگامی که سر خودشون رو برگردوندن، گله بسیار بزرگی از اسب و گاو و گوسفند و شطور رو دیدن که به دنبال اونها سرازیر بودن. تیسه تک حیرت زده گفت اینها دیگه کجا بودن؟ گنان گفت پسر یک چوپان خلخخوی حیوانات رو میشناسه، این خیلی طبیعی که گوزفندها و گافها و شطورها و اسبها به جایی میرن که بچه هاشون برده میشه این گله بزرگ به دنبال بچه هاشون میان حاکم نمیتونه اونها رو برگردونه گونان و همسرش به دیاری رفتند که از سرزمین حاکم خیلی دور بود جایی که بتونند با شادی و آرامش زندگی کنن پاییز که از راه رسید گونان با کرعص که کهر خودش به چادر قدیمی پدر و مادرش رفت و از اونها خوست که بیانو با او و تیسه زندگی کنند. اونها پذیرفتند و باربندیل خودشون رو بستند و در کنار پسر و عروس خودشون زندگی تازه ای رو شروع کردند بله دوستان یکی دیگه از افسانه ها و داستان های مردم مغولستان در اینجا به پایان میرسه و من تشکر میکنم از شما عزیزانی که تا به این قصه همراه و همسفر من بودید. امیدوارم در قصه های بعدی از این سری داستان ها من رو همراهی کنید. مراقب خوبی های خودتون باشید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و خوبان. دست حق به همراهتون.